سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز شهر آهوز در دانمارک امروز یک شنبه 31 شهریور 1392 خردی برابر با 22 سپتامبر 2013 میلادی میزبان شما هستیم تا ساعت یازده بامداد امروز زمان پخش برنامه بامدادی راژیال بارز شنبه از ساعت هشت و سی دقیقه تا ساعت دوازده و یک شنبه از ساعت هشت و سی دقیقه تا ساعت یازده بامداد است. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از صفات فیسبوک رادیو البرز دنسک پرسیسک و از تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور تارنمای ایران گلوبال داد اینفو میتونید دنبال بکنید که هر ساعت به روز میشه تلفن ما 27 58 22 12 هست آدرس الکترونیکی ما رادیو اللبز@ هاmail.com است. امروز در برنامه بامدادی رادیو اللبرز علاه بر دادای خبری، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهید داشت. و همین سه اطلایه در رابطه با جمعه آینده، در دانشگاه آوهوس دانشکده علوم سیاسی میزبان پروفسور میدی مزفری برای آخرین بار با همکاران و دانشجویان و همینطور هموطنان ایرانی برنامه خدافزی تدریس در این دانشکده را دارند و همینطور شنبه آینده موزیک پاپی هست در مایل گده گنگن شماره 52 که توسط هنرمندان ایرانی از جمله آقای سعید والایی انجام خواهد شد. ورودی هم 60 قرانه روز شنبه یائنده ساعت 21 همین طور چهارشنبه 2 اکتبر سینما آسف و پردیس فیلم مستند سپیده رو به نمایش در خواهد اومد و همینطور کنار نشان دادن فیلم مستند سپیده فعالیت‌های های فرهنگی هست که در طول برنامه به خدمتتون اطلاع داده خواهد شد با ما تا ساعت یازده بامداده امروز Jeg tør det mig, kan ikke man nå mig også så så så shit koru at the dance bot one almost so so so sabse boro sabse boro ajana to peda oi try my the peda jish koru tor peda yaadon bhabe peda you was نگی لب تو دیگه نمیشه دیگه ناچون دیگه نمیشه قلب من استفاد که نمیدونم چرا هر جا که میرم یاد تو همه چرا چشمات به چشمای از عشقم خیانت کرد حالا عشق این جا کنارم نیست چه سرده شونه های من ببین من پا بدون تو چقدر دلگی رو آشفتم با این تو عادت کرد چرا برق نگاه تو به قلب من حسثحبت کرد نمیدونم چرا ارجا که میرم یاد تو هم حد چرا چشمما؟ به چشمایه پر از عشقم خیانم کرد <تصفيق> حالا عشقام به یادت میان روگونه های من کسی اینجا کنارم نیست چه سرده شونه های من ببین تن پا بدونه تو چقدر دلگیر و آشفتم با این Thank you. جاش شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو آلبرز جلب می کنم. البته قبل از خلاصه خبرها را به آگاهی شما برسونم. یادآوری می کنم که فردا اول ماه مهر. روز بازگشایی مدارس در ایران هست در این رابطه مطلبی را تقدیم حضورتون خواهم کرد ضمن که امروز 31 شهریور ما آغاز جنگ ایران اراق هست که نگاهی به این مطلب میکنم که از نظر حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز جنگ ادامه داره توجه شما را به مقاله زیبا و توجه شما را در ادامه برنامه جل می کنم اما چند لحظه دیگر توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیال بارز جل می کنم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با همتای ترکی ای خود در تهران دیدار و گفتگو کرد بنا به گزارش ها دو طرف در پی این دیدار در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کردند روابط عمومی دادگستری یزد از اعدام 8 نفر در زندان مرکزی یه است خبر دادست به نوشته تارنمای دادگستری استان یه است این احکام اعدام روز پنجشنبه گذشته 28 شهریورما به اجراد در اومد همینطور اسمایل صادقی داستان عمومی روز گذشته از اعدام چهار نفر در زندان مرکزی قزوین خبر داده است از آغاز روی کار آمدن حسن روحانی گزارش شده است که نزدیک به 100 تن در ایران اعدام شدند مریم مقدم هنرپیشه ایرانی ساکن سوئد ممنوع خروج است مریم مقدم هنرپیش ایرانی ساکن سئود در پی توقیف پاسپورت از اسفند سال گذشته اجازه خروج از ایران را ندارد نوی عبدالحمید امام جمعی عل سنت زاهدان در نامه به آیتلا خامنه ای از او خواست است مانه اعدام بیست و شیش جوان عل سنت کرد در زندان رجایی شر کرج شود مهدی رحیمی فعال سندیکایی و از کارکنان شرکت نفت ایران روز پنجشنبه 28 شهری ورما در تهران بازداشت شد عضو انجمن سنفی روزنامنگاران می گوید که این انجوان نزدیک به سه هفته است که در نامه به سه وزیر اطلاعات کار و ارشاد خواستار لقب پلومب شده است اما این درخواست تا کنون بی مانده است بدهی هفتات هزار میلیاردی سه, خ... سه وزارت خانه در دوره احمدی دکتر احمدی نجاد اعلام کرد که دولت دهمو ده بدون بدهی تحویل دولت آینده میداد، اما نزدیکان حسن روحانی رشموری اسلامی می گویند میزان بدهی سه وزارت خانه نیرو نفت و مسکن به پیمانکاران حدود ه هزار میلیارد تومن است که از این مبلغ 300 30 هزار میلیار تومن متعلق به وزارت نیرو است. در ادامه روند کاهش قیمت دلار در بازار ارز ایران روز گذشته قیمت هر دلار به زیر سه هزار تومن سقود کرد. طالب نعمت پور گیر وزن 84 کیلوگرم ایران در دومین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست پایتخت مجارستان به مدال طلا دست یافت چند روز گذشته هم کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد نگاهی به خلاصه خبرها از دیگر کشورهای جهان خواهی منداخت سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان یک روزنامه نگار منتقد حکومت را به قاچاق اسلحه به ایران متهم کرد شهروندان آلمانی امروز یک شنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوقهای رای خواهند رفت پلیس ترکیه یکی از سیتیز جویان را به قتل رساند. افراد ناشناسی ساختمان مرکزی پلیس در آنکارا را با خمپاره مورد حمله قرار دادند. وزیر ارتباط اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد آنکارا در امور پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا روز گذشته گفت که به خاطر به گفته وی نگرش تبعیض آمیز اعضای کنونی اتحادیه اروپا ترکیه احتمالاً هرگز به این اتحادیه اروپا نخواهد پیوست. مقامات بالا پایتادی اروپا روز گذشته از دولت اسرائیل در خصوص زبط و تصرف کمکهای انسانی برای فلسطینیان توضیح خواست. در جریان حمله اسلامگرایان مسلح به یک مرکز خرید در نایروبی پایتخت کنیا روز گذشته دسته کم 39 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. حدود 5 هزار تن از کارگران صنایع نساجی بنگلادش روز گذشته در ارتتصابی چه ساعته خواستار افزایش دست مزدا شدند. یک رشته انفجار و حملات مسلحانه در روز گذشته در کشور عراق هفتاد کشته بر جای گذاشته است. انتخابات مجلس محلی کردستان عراق روز گذشته شنبه با تدابیر امنیتی ویژه برگزار شد. مقامات فرانسوی گویند که در یکی از پروازهای شرکت هواپیمایی ایرفرانس مقدار یک که سه دهم همه تن کوکاین خالص کشف کردن این روزا هیچی برام جالب نیست شدم از تموم دنیا دل زده همه دارن راجه به من میگه نفس سرت به دنیا اومده این روزا تموم قلبم گیرد ام سبات کنم لالایی می خونم ولی نمیتونم خوابت کنم دوست داشتنم منو چرا نمیتونی باور کنی آتیش این عشق شاید دوست داری خاک سر کنی دوستت دارم ولی چرا نمیتونم سبحت کنم لالایی می خونم ولی نمیتونم خوابت کنم دوست داشتن من و چرا نمیتونی باور کنی آتیش این عشق و شاید نیست داری خاک سر کنی شاید میخواییم همه عشق دمونه تو دل خودم دلت میخواد دیگه بهت نگم که عاشقت شدم کاش توی چشمان میدینی کاش گینا میفهمیدی بگو چه تو ثابت کنم که تو به هم نفس میدی یه راهی پیش رو بیزا یه کم به هم فرصت بده برای عاشق شدن خودت به هم جرد بده یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بی بشه من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه یه راهی پیش رون بیزا خودت به هم درد بده یک کاری کردی آشغت هر رحزه بیتابت بشه من جونمو به بهک میدم شاید بهت ثابت بشه. یا یک گوش از دلت برام یه جایی بذار واسه یه همین یه بار یکمی یه راهی پیش رون بذار یکم به هم بده برای عاشق تر خودت به هم بده یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بیتابت بشه من بهت میگم شاید بهت ثابت بشه یه راهی پیش اون میزا یه کم بهم به فرصت بده برای عاشقت ترشدم خودت بهم به جونت بده یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بی‌تابت بشه من جونمو بهت میدم شاید بهت ثابت بشه توجه شما رو جلب کنم به مجله اقتصادی ساعت رادیو البورس برای اولین بار در ده ماه گذشته نرخ دلار در ایران به زیر 3000 تومان رسید نرخ یورو پوند سکه و هر گرم طلا نیز کاهش داشت ناظران اقتصادی این کاهش را ناشی از تلاش دولت جدید ایران برای صدایی در عرصه بین المللی ارزیابی می کنند. خبرگزاری دانشیان ایران گزارش داد که نرخ دلار بعد از نزدیک به ده ماه به زیر 3000 تومان رسید. نرخ سکه نیز با کاهش چشمگیری مواجه شد. سکه تمامتر جدید روز گذشته شنبه به قیمت 9۷ هزار تومن در بازار تهران معامله شد. نرخ سکه در مقایسه با روزهای هفته گذشته 6 هزار تومن کاهش داشت. بخشی از کاهش نرخ طلا مربوط به کاهش نرخ جهانی تلاست. نرخ یورو، نیز بعد از ماها به زیر هزار تومان رسید. پوند بریتانیا نیز با قیمت 4850 تومان در بازار خرید فروش در تهران معامله میشد. اما نگاهی هم به دیگر عرصای رایج در ایران می کنیم که دلار 2910 تومان، یورو سه هزار و نوزده شش تومان پندینگلیس چهار هزار و, و تومان کرونا دانمارک پانصد و سی تومان در بازار آزاد تهران خرید و فروش می شد. محمد رضا خباز نماینده ی مجلس شورای اسلامی از خروج حدود 600 میلیارد دلار از سرمایه ایرانیان در 8 سال اخیر خبر داده است او گفته ی خروج این مقدار سرمایه از ایران بزرگترین ضربه ای بود که دولت قبل یعنی احمدی نژاد به ایران زد این نماینده مجلس برگشت ده درصد از این ثروت خارج شده را برابر با یک بودجه نفتی در کشور عنوان کرده است. عضو هیات تطبیق مصات دولت با قانون همچنین گفته جذب این منابع زمینه را برای اشتغالزایی در ایران فراهم می کند محمد رضا خباز در بخش دیگری از این گفتگو به لزوم حصف ردیف های غیر شفاف در بودجه اشاره کرد و ادامه داد برخی ردیفا در بودجه وجود دارند که 30 تا 40 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص میدند که این ردیفا به صورت غیر شفاف است و در مرحله اول می میبایس این ردیفا حذف حذف شود در همین زمینه وی به روزنامه ایران گفته خروج سرمایه ایرانیان بزرگترین ضربه ای بود که دولت احمدی نژاد به ایران زد در این گفتگو روز 5نجشنبه گذشته در این روزنامه منتشر شده این نماینده ادامه داد سرمایه هایی که می توانست سبب توسعه کشور شود به دلیل بیساباتی قوانین قوانی و مدیریت به خارج از کشور رفت و این امر رشد اقتصادی ایران و منفی 55 و دهامه درصد و بیکاری بیش از سانیم میلیون نفر را ایجاد کرده است به گزارش رسانه های داخل ایران مقصد اصلی سرمایه های خارج شده از ایران در سالهای گذشته کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه بوده است آماری که رسانهای داخل ایران منتشر کردن تنها در 6 ماه اول سال 92 ایرانیان بیش از 400 شرکت در ترکیه به سبت رساندند. نوسانات قیمت عرض کاهش رشد اقتصادی و عدم امنیت سرمایه گذاران از جمله مواردی است که در رسانهای ایران به عنوان عوامل فرار سرمایه از ایران طیه سالهای اخیر عنوان شده است. در پی لغو تحریم شرکت کشتیرانی جمبوری اسلامی یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفته است که برداشتن تحریم شرکت کشتیرانی جمبوری اسلامی به خودی خود مشکل حمل و نقل کالا را حل نمی کند چون شرکت خدماتی که در بنادر ایران فعالیت می کنند تحریم شده است و شرکت های خارجی به دلیل تحریم توانند با این شرکت کار کنند مسعود دانشمند رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است شرکت شرکت هایی که توسط آمریکا تحریم شدند هیچ شرکت خارجی حاضر با همکاری با شرکت نیست شرکت تایت واتر شرکتی است که تقریبا انحصار ارائه خدمات بندری را در بنادر جنوبی ایران در اختیار دارد و پیشنهاد شده که برای رفع مشکل تحریم سازمان بنادر و کشتیرانی شرکتهایی را با عنوان جایگزین آن معرفی کند تا شرکت‌های خارجی بتوانند با آن همراهی کنند. آقای دانشمن میگوید گوید که بنابرای آمارایی که مدیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلام کرده این شرکت در سال می تواند و هزار کانتینر به بنادر جنوبی ایران حمل کنند که در حالی که سالانه دو میلیون و هیستد هزار کانتینر وارد بنادر می شود و این یعنی 25 درصد واردات از طریق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و بقیه به وسیله شرکت های خارجی به ایران حمله می شود. یک گزارش اقتصادی مجله اقتصادی ساعت رادیو البرز رو به پایان میبره تازه‌ترین خبرها همونطوری که پیشتر گفتم قیمت دلار در ایران برای اولین بار به زیر 3000 تومان سقوط کرد و قیمت یورو هم کاهش پیدا کرد که این ادامه داره کاهش روزافزون قیمت دلار در ایران فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس گفتگویی را داره با رادیو فرانسه در این رابطه ادامه روند کاهش قیمت دلار در ایران که توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنه قیمت عرض در بازار تهران همچنان در حال کاهش است و امروز به کمتر از 3000 تومان رسیده آقای فریدون خوابند شما به عنوان تحلیلگر اقتصادی دلایل این اتفاق رو که از چند ماه پیش آغاز شده و حالا شدت گرفته چطور تفسیر می اگه یادتون باشه درست یک روز بعد از انتخابات خورداده گذشته هم بازار با یک کاهش قیمتی در مورد ارز و سکه مواجه بود بله در مجموع به نظر می که بازار آزاد عرب تهران تا اندازی زیادی تنش های پیشین خودش از دست داده و قیمت دلار آمریکا به زیر سه تومان رسیده دلیل اصلی این وضعیت به نظر من سیاسی و روانی است از این لحاظ که در چشمانداز سیاست خارجی ایران و همینطور در واقعیت کنونی سیاست خارجی ایرانی های بسیار مهمی پیدا شده دستگاه مدیریت دیپلماسی ایران ابتکارهایی رو از خودش نشون داده که این ابتکارها در مجموع در مقیاس بینوملالی هم با استقبال روبرو شده گفتمان دیپلماتیک ایران عوض شده و این مجموعه این مسائل محافل اقتصادی ایران و حتی مردم عادی افکار عمومی پسنداز کنندگان ایرانی رو به صلاح قانع کرده که به احتمال قریب به یقین پولاتی در جریان است به خصوص در رابطه با تحریم و این امکان بیش از همیشه وجود داره که چرخش تازه در سیاست خارجی ایران بیتوند در آینده نزدیک دگرگونی رو هم در تحریم ها پیش بیاده و چون تحریم اقتصادی و شدت گرفتن این تحریم ها تاثیر عمده داشت بر افزایش قیمت دلار سقوط پول ملی ایران این امید پیدا شده که با تحولات مثبت فعلی حرکتی در جهت عکس شروع بشه و پول ایران به تدریج قوی بشه یکی از دلایل این موضوع میتونه به دلیل جو روانی ناشی از سفر آقای روحانی به نیویورک باشه و بعد از این سفر دوباره افزایش قیمت داشته باشیم ببینید سفر آقای روحانی به نیویورک در شرایطی انجام میشه که بخشی از افکار عمومی در ایران و همینطور بسیاری از ناظران هم در ایران و هم در سطح بین المللی این امیدواری رو پیدا با کردم که ملاقاتی بین ایشان و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انجام بشه که در واقع این نه فقط چرخشی است در وضعیت سیاست خارجی ایران بلکه حتی چرخشی است در سیاست کلیه منطقه‌ای و حتی به نوعی با سیاست جهانی هم تاثیر میگذاره بنابراین این مسئله به اصطلاح گذاشته و ولی اینکه ما بگیم بعد از سفر آقای روحانی وضعیت به حالت گذشته برمیگرده در این زمینه باید محتاطانه عمل کرد گویا اینکه می توانیم بگوییم که فعلا از نظر اقتصادی عموملی در کار نیست که توانسته باشه بر موقعیت دلار تاثیر بگذاره ما بینیم که در واقع هنوز تحریم ها شدت خودش رو حفظ کرده و حتی تحریم های دیگه هم در راه در ماه می میبینیم که در وضعیت ارزاوری صادرات ایران تحوری پیش نیامده کسری بودجه در حال حاضر بسیار بسیار سنگینه نرخ تورم بالاس و کشمنداز کاهش نرخ تبرخم فیلن به شکل مخصوصی وجود نداره بنابراین اواملی که می توانند از لحاظ اقتصادی بر وضعیت و رابطی اون با دلار تأثیر بگذارند در حال حاضر این عوامل موجود نیستند بنابراین می توانیم بگوییم که در مجموع عامل اصلی همونطور که ارز کردم عامل سیاسی است، و اوامل روانی آقای خوام فاصله بعد از انتخابات وقتی قیمت ارز پایین اومد، از تحلیلگران اقتصادی اون رو موقت دونستن، در حالی که در چند ماه فقط وقتی خبر احتمال حمله امریکا به سوریه منتشر شد، با اندکی افزایش قیمت روبرو شدیم. حالا به نظرتون این کاهش قیمت در صورت محقق شدن شرایطی که گفتید مداوم خواهد بود؟ ببینید من شخصا یک مزری تردید دارم. به خاطر اینکه اولا دولت آقای روحانی چندان موافر نیست با اینکه نرخ ارز در ایران به این صورت کاهش پیدا بکنه کاهش نرخ ارز در مجموع به نظر من آنقدر هم که بعضی ها فکر میکنن در شرایط فعلی به سود اقتصاد ایران نیست اولا دولت نیاز داره به اینکه کثروی بودجه بسیار سنگین امسال رو جبران بکنه و برای این دست کم نیاز داره به دلار ۱ دونی و همینطور که رئیس توازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم گفته 3200 تومان برای یک دلار چندان تعجب آور نیست و از طرف دیگه کاهش قیمت ارز میتواند به صادرات غیر نفتی ایران هم ضربه وارد بکنه چون که میدونیم تا اندازه زیادی صادرات غیر نفتی که گسترش پیدا کرده ناشی از افزایش قیمت دلار و سقوط ارزش ریال بوده که باعث شده در دیل رقابت پذیری این صادرات افزایش پیدا بکنه بنابراین من شخصا فکر کنم که بعد از اینکه این موج روانی و سیاسی به صلاح تازه بودن خودش رو از دست بده از لحاظ اقتصادی تو لایه بالای سه هزار تومان میتونه برقرار باشه مگر آنکه تحولات خیلی خیلی مهمی اتفاق بیفته از جمله اینکه رفع تحریم ها در نظر از در چه بهبود روابط شدید اقتصادی ایران با و سیاسی ایران با درد رفع تحریم ها شدت بگیره و این تحولات باعث شده که تاثیرات خیلی خیلی زیادی بر نرخ ارز گذاشته بشه ولی در شرایط فعلی من بعید میدونم که واقعا از لحاظ اقتصادی نرخ ارز بتونه پایین بیاد. معلومه از فریدون خاون تحلیلگر اقتصادی که در برنامه امروز ما شرکت کردن. این جایی دنیا که بری هیچ جا نمیشه واا لباساشو اینک ریبنشو پیرنه کاپیتان و نیگاه دنپایی ابریامو دیدی؟ شکلت بفرماییم نگاه میکنه پیکانشو شو. پنه پن. میخواستی شبرولت پنج و شیش باشه واا پیکانه که پیکانه دورش که مال تایی رو ده تو عشق توی تو یاره بندن یکی یه دونه دختر توی یه روزه من عاشق تو شدم تو مهتاب خدیج و شبای پر ستاره بیا کنارم من باش دوباره باز دوباره دل در توی عاشق بندن دلم میخواد همیشه با تو بمونم دل بر توی آاشقمدم دلم میخواد همیشه با تو بمونم شلوارتم که و بچه آبادادنم شدی آسی جنگرزدممه مایم تو باسبوزه بعدشم دختر کارون دل می با مویه حش. بنا چودم ای گل بارون دل آشه هم تو کلی مجنون آره آشه منم دختر کارون دل بر توی آشه منم دلم میخواد همیشه با تو بمونم دل بر توی آشه منم دلم میخواد همیشه با تو بمونم از تان کیه که شب کو جا می برای من عاشقانه انکس تو این شهر بدیدی تو ای بندن بر او از همه قشنگ تر من او تو شدم اسم تو رو نوشتم رو ماسه های ساحل تا که همه بدونن میخوام قص جون رو دل دلبر توی عاشق منم دلم میخواد همیشه با تو بمونم دل بر تویی عاشق منم دلم میخواد همیشه با تو بمونم اینم امریکا مدرکتو گرفتی؟ نه بابا همش کواب و فیسبوک بوی فرن که نگرفتی سسوله آمریکا عمرن بچه آبادان نمیشن اصلا چرا برگشتیم؟ اومدم بگیرمه ماداز و دختر کارون دل میبری با موهای هفشون دیبونت شدم ای گل بارون دل عاشقم تو کردی مجنون آره عاشقتم دختر کارون دل بر تویی عاشق منم دلم بیخواد کلندم با تو بمونم دل بر تویی دلم با بمونم. روز گذشته روز جهانی صلح بود و امروز سیه کم شهریور ما در صفات تاریخ معاصر ایران جنگی آغاز می شود. سیه کم شهریور ما روز آغاز جنگی است که هنوز تمام نشده است جنگی که حتی برچسب مقدس هم نتوانست از سوزش زخما و فشار رنج آن بکاهد هکس سال تمام مردم ایران به خاک افتادن مردان و زنانی را تماشا کردند که حتی اگر با پای خود به سمت میدانهای جنگ می‌دویدند و آن را دفاع از وطن و شرافت و اعتقادات خود میدانستند در برابر آرزوهای بدباد رفته جوانی های سوخته و عشق‌های ناکام پاسخی نداشتند. دیوارهای فروریخته خمپارای نشسته بر تن زمین و عشقایی که هرگز بند نیامدن خاطره شهرهایی است که شرمساری جنگ را تجربه کردند. زنهای بیشماری این خاطره را هر روز در خود تکرار میکنند. تجربه ملموس اینکه جنگ هرگز مقدس نیست. جنگ ایران و طولانیترین طولانی‌ترین کلاسیک در قرن بیستم و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود. این جنگ 2887 روز کشید که از این روزها هزار روز نبرد فعال جریان داشت در 793 روزان سربازان ایرانی حمله کردند و در 27207 روز ارتش عراق هزاران ایرانی به اختیار خود یا به اجبار در این جنگ جنگیدند اما قربانیان جنگ از میان هر دو گروه بودند. تلفات این جنگ بر اساس آمار حکومت ایران 213000 کشته، 335000 معلول، 42618 اسیر و 7000 مفقود الاثر و 1000 میلیارد دلار خسارت برای جامعه ایران بوده است. آمارهای دیگر از کشته شدن دو ۲ 21 هزار ۶۸ و, و, و دو نفر از جوانان و فرماندان ایرانی و محلولیت 554.858 رزمنده جانباز خبر میدن 60 درصد جانبازان زیر 25 درصد 40, 40 درصد باقی مانده 25 درصد و بالاتر هستند. این جنگ هرچند پس از حدود هشت سال در مرداد 1367 با قبول قدنامه 598 سازمان ملل روی کاغذ پایان یافت اما پس از 250 سال هنوز عوارض و اثرات آن بر زندگی روزمره مردم، روح و روان آنها و اقتصاد ایران، چهره ظاهری شهرها و روستاها باقی مانده است. برای جستجوی نشانهای جنگ در ایران لازم نیست تا جنوب و غرب. سفر کنی و مناطق جنگ زده و درگیر را ببینی بسیاری از کوچه ها و خیابان های شهر های ایران به نام مردان و زنانی نامیده می شوند که جان خود را در طول هشت سال نبرد از دست دادن و بر بسیاری از دیوارها تصاویری از مردان جنگ و فرماندهان نظامی هست که حکومت ایران می کشد با حفظ آنها در خاطره شعر بر عرضش های تبلیغی جنگی که آن را دفاع مقدس می تاکید کند تلویزیون ایران هنوز برنامه هایی برای یادبود جنگ می سازد و سازمان ها و نهتا برای بزرگاشت آن کنفرانس و نشست برگزار می کنند. نویسندگان تشویق به نوشتن درباره جنگ میشون و کتاب های درسی هم ارزش های جنگ را به بچه های مدارس میآموزند. بیش, بیش از این ها اما مردم ایران به خصوص. آنها که در سالهای 1960 جوان بودند یا در آن دوران به دنیا آمدند، اثرات جنگ را همچنان در زندگی خود احساس می‌کنند. علاوه بر آنها، به طور مستقیم درگیر جنگ شدند و اوص یا اعضای خانواده خود را در جپه ها یا در جنگ شهرها از دست دادند. بسیاری دیگر هم هنوز با بقایای جنگ درگیرند خانواده های زیادی با معولیت های ناشی از جنگ دست و پنج نر و بسیاری از در آسایشگاه‌ها ها بستریان از هم پاشیدگی خانواده ها ماجرت های اجباری از دست دادن سرمایه و درآمد و مشکلات فرهنگی و اجتماعی تنها بخشی از مسائلی است که جنگ به بار می آورد. رد پای جنگ حتی در شهرهایی که دور از جنگ بودند بر جاست مجموعی از محرومیت‌ها و فشارهای عصبی. با این حال، شهروندانی که در آن دوران در شهرهای جنوب و قرب ایران زندگی کردن بیش از دیگران از این عوارز آسیب دیدن و این عوارز همچنان در محیط زندگی آنها وجود دارد. وله سرخ خورشید باز اومد و شب شد پوری زو سرخ خورشید باز اومد و شب شد پوری Hver nætteren, hver nætteren, hver nætteren, Ach, chin shemeh chak siro gadapeh. Sali sinun ya, sali دوشنبه اول مرما در ایران روز بازگشایی مدارس است روزنامه شرق در این مورد نوشته که اول مرما زنگ ها که به صدا درمی آید دانش آموزان با کیف، کفش نو و لباس های یک شکل دست در دست پدر مادرایشان یا همراه دوستانشان به مدرسه می روند ولولهی که, ولوله که در حیات مدرسه از صدای زده دانش آموزان به پا می شود و دانش آموزان که به صف می شوند، این طرف دیوارهای مدرسه کودکان و نوجوانانی در خیابان ها، کوچه ها، کارگاه ها و کارخانه ها حضور دارند که اغلبشان دغدغه نان دارند و ثروت. ثروت اندک را به علم بیشتر ترجیح می دن. کودکان و نوجوانانی که هیچ حامی و پشتیبانی ندارند که آنان را به حق اولیهشان، یعنی تحصیل برگرداند و درس و مشقشان را پیگیر باشد آنان بیرون از مدرسه و کلاس درس برای به دست آوردن یک لقمه نان مشغولند در حالی که میز و خالی است و معلمی انتظارشان را نمی کشد البته تمام بازماندگان از تحصیل را کودکان کار تشکیل نمی دهند بسیاری از آنها دانش آموزانی هستند که در سالهای گذشته به دلایل مختلف ترک تحصیل کردند چندی پیش مرکز پجویش های مجلس شورای اسلامی تبقیه سرشماری سال 1385 خورشیدی، آماری تکاندهنده از کودکان بازمانده از تحصیل منتشر کرد که آب پاکی را بر همه تناقض های مسئولان آموزش پرورش ریخت طبق این آمار کمکنون 3 میلیون و 200 هزار کودک 6 تا 17 ساله در کشور وجود دارند که یا اصلا به مدرسه نرفتند و یا به دلایل مختلف از تحصیل باز ماندن. این آمار منهای کودکان و است که در سالهای قبل از 1385 خورشیدی به دلایل مختلف از تحصیل باز ماندند و همکنون از چرخی نوجوانی وارد جوانی شده و پای در دهه دوم زندگی خود گذاشتند کسانی که از آمارهای مراکز پجویشی خارش شدند و دیگر از آنها با من بازمانده از تحصیل یاد نمی شود آنطور که علی باغرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در زمستان گذشته اعلام کرده است همکنون 9 میلیون و 719 هزار ایرانی بالای 6 سال توانایی خواندن و نوشتن ندارن ایرانیان مقیم دانمارک اش و ماشنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. آندریاس فوگاسموسن دانمارکی به سود ایران است که با جامعه بین الملل تعامل داشته باشد. فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تا نماهای محلی آندریاس فوگاسموسن دانمارکی دبیر کل ناتو روز پنجشنبه از اظهارات حسن روحانی درباره عدم تمایل ایران سلاح های کشور جمعی از جمله سلاح هسته استقبال کرد و گفت به سود ایران است که تا با جامعه بین الملل تعامل داشته باشد آقای کاسموسن در نشست اندیشکاران اروپایی در بروکسل سخنرانی میکرد اظهار داشت از ضمانت ایران مبری بر اینکه در پی های هسته ای نیست بسیار دلگرم شده و ای افسود به سود ایران است که با جامعه بین الملل تعامل داشته باشد نرخ تبرم دانمارک صف ممیز یک درصد رسید نرخ تبرم دانمارک یکی از کشورهای منطقه یورو در سال 2013 کاهش یافت و به کمتر از صف ممیز 1 درصد رسید به گزارش دانمارک نیوز به نقل از تارنمای محلی موسسه آمار و ارقام دانمارک در تازه در این گزارش خود اعلام کرد نرخ تبرم این کشور ته سال 2013 به کمتر از صف ممیز 1 درصد رسید است که این پایان, تر... پایان ترین رقم در 45 سال اخیر به شمار می رود. محکومیت هنرمند ایرانی دامارک به اتهام نجات پرستی فیسبوک دنس پرسیز به نقل از تا نمای محلی دادگاه عالی دامارک فیروزه بس افغان را که در یادداشت وبلاگی مردان مسلمان را به تجاوز خشونت و به قطر رساندن دختران خود متهم کرده بود به اتهام نجات پرستی و نفرت پراکنی به 5000 کرون جریمه یا 5 روز حبس محکوم کرد تولد یک طول ببر نادر در باغ وحش در آلبرگ دانمارک یک قلاده ببر که نجات آن در جهان رو به انقراض است در باغ وحشی در آلبرگ متولد شد و به جذابیت های این مکان افسود به گزارش تارنمای محلی نجاده این ببر بسیار نادر است و از این نوع بپ در جهان روبه انقراز است او که تنها چند روز از تولادش گذشته کماکان سالم و بدون مشکل است دانمارک به پناهجویان سوری پناهندگی می دولت می اعلام دولت دانمارک آمادی خود را برای اعطای پناهندگی و میزبانی از تعدادی از پناهجویان سوری مستقر در شهرهای جنگی اعلام کرد به ترتیب دام معق دومین کشور اتاقی اروپا خواهد بود که بحران عمیق در سوریه را امروزه غذا قرار داده است و به پناهجویان سوری اجازه می داد که در دام اقامت کنند. تفاوت حقوق دستمز زنان و مردان در دام همچنان ادامه دارد. توافت حقوق دستمزد مردان و زنان همچنان به قوت خود باقی است و بیشتر نیز در دوره اتفاق می افتد که فرزندان خانواده هنوز خورد هستند و نیاز به مراقبت بیشتر دارند که این مراقبت نیز اغلب توسط مادران صورت می گیرد این, این توافت آشکار در حالی رخ می دهد دامار از جمعه کشورهای مدعی برقراری برابر و مساوات میان زنان و مردان نیز معرفی می شود امروز مردان دانمارکی 17 درصد بیشتر دستموز نسبت به زنان دریافت می کنند. قطار سری سر به زودی در دانمارک ایجاد خطوط قطارهای سری سر در دامارک و اولویت اول آن به مسیر کوپنهاک اودنسه و برعکس همچنین آغوز به آل و برعکس خبری بود که در راستای ارتقاء صنعت همن و نقل کشور اعلام شد و برنامه راه اندازی این پروژه در دستور کار قرار گرفت حزینه 28 میلیارد کرونی این پروژه را شرکت استخراج نفت و گاز از بخش دانمارکی دریای شمال پرداخته کرد این بزرگترین سرمایه گذار در حمل نقل عمومی در 150 سال گذشته در دانمارک می باشد جریمه سنگین برای پارک غیرقانونی خود در پارکینگ های مخصوص معلولین در دانمارک مجلس دامارک به زودی درباره لایحه پارکینگ ها برای افراد معلول دامارک راگیری می کند با تصویب این قانون افرادی که خودرو شخصی و دولتی خود را در پارکینگ و افراد معلول دامرک پارک کنند جریماهای سنگین تری با آنها بس خواهد شد پیشبینی می شود این لایه به راحتی به تصفیب مجلس نمایندگان دامارک برسد دانمارک بزرگترین تولید کننده زباله غذایی در اسکاندیناوی شهروندان دانمارکی در میان مردمانی قرار دارند که تغذیه خوبی داشته اما میزان مصرف آنها به حدی هست که میلیاردها کرون زاییات مواد غذایی در سال تولید می می‌کنند یک مطالعه جدید نوردیک نشان می تقریباً تقریبا 60 درست دامارکی ها هفته یک بار غذای خود را به سطر زباله پرتاب می کنند در این گزارش اعلام شد دلیل بیشتر عدم استفاده مواد غذایی تاریخ و نوع شرکت تولید کننده مواد غذایی می باشد بنابرای ارزابی صورت گرفته هر دامارکی سالانه حدوداً 660 کیلوگرم زباله غذایی تولید می کند. خانواده ها و مراکز تامین مواد غذایی و پزایی بزرگترین تولیدکنندگان زباله های غذایی در دانمارک هستند. پرداخت از طریق بازشناسی تصویر، صورت و دستبند هوشمند در دانمارک و انگلستان گفته می شود صورت انسان بازگو کننده همه چیز در تشخیص هویت اوست درست مانند اثر انگشت یا حتی دقیق تر از آن اکنون برای استفاده از این امکان در پرداخت به صورت پیبال و برای نمونه در پرداخت صورت حساب در فروشگاه آزمایشی موفقت آمیز در منطقه فارمیری در هوملندن لندن انجام گرفت. استفاده از دستمند هوشمند نوع دیگر از فناوری پیبال به جای استفاده از کارت اعتباری است که اخیراً یک شرکت دانمارکی آن را عرضه کرده است. در این نوا... نوآوری از یک دستمند مجهز به ژتون برای پرداخت استفاده می شود، و صرف جویی در وقت و راههایی از خطر گم شدن کیف پول یا کارت اعتباری از امتیازهای آن است و آخرین خبر این هفته دامار درهای دیویز کلیسا در دامارک بسته می شود فیسبوک دنس پرسیس به نقل از تانمای محلی وزیر زیر فرهنگ دامارک تصمیم به بسته شدن 6 کلیسا در کبنهاک در سال 2013 گرفته است به همچنین اعلام کرد شاید بزودی دیویس کلیسا در دانمارک بسته شود. رئیس کلیسا کوبنهاک در این گزارش اعلام کرد سال گذشته 14 کلیسا در کوبنهاک به دلیل عدم استقبال شهروندان بسته شد. بسه میخندم بی تو من یه لحظه نگاهی به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو الورز جل میکنم علیه لاریجانی رئیس مجلس شورا اسلامی روز گذشته با رئیس مجلس ترکیه دیدار رو گفتگور کرد گزارش هاکیست ها که علیه لاریجانی در این نشست خبری گفته که سه کشور ایران، ترکیه و عراق توافق کردن تا پیگیر راهلی سیاسی برای بحران سوریه باشند. در همین حال روزنامه حریت چاپ ترکیه خبر داده است که انتظار می رود رئیس مجلس ترکیه امروز یکشنبه با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. رأیت او می استان راوت دادگستری استان یزد روز گذشته از اعدام 8 نفر در زندان مرکزی یزد خبر داد و به نوشته تارنمای دادگستری استان یزد این احکام اعدام روز پنجشنبه گذشته به اجرا در آمد است برابر قوانین کیفری ایران حمل نگهداری و قاچاق میزان مشخصی از مواد مخدر مجازات اعدام دارد سالانه در ایران ده ها نفر به این اتاما محاکمه و اعدام می شوند که در میان آنها شمار قابل ملاحظه ای هم زن هستند از طرف دیگر اسماعیل صادقی داستان عمومی قزوین روز گذشته از اعدام چهار نفر در زندان مرکزی قزوین خبر داده است از آغاز روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور گزارش شده که نزدیک به 100 نفر در ایران اعدام شدند مریم مقدم هنرمند پیشه ایرانی ساکن سوئد در پی توقیف پاسپورت از اسند سال گذشته اجازه خروج از ایران را ندارد. بنا به گزارش هرانا مریم مقدم که پس از شرکت در فستیوال فیلم برلین به ایران سفر کرده بود از اسفند سال 91 به دلیل زبط گذرنامه توسط پلیس ایران عملا ممنوع خروج شد و که کار هنری خود را با بازی در فیلم بلندی های سفر به کارگردانی حسنلی لستانی آغاز کرد در فیلم پرده ساخته جفر پنایی که به صورت پنهانی ساخته شده بود نیز نقش کرده بود گفتنی است که طیه روزهای اخیر چندین روزنامه سوئد فراخانه گسترده ای را برای راههایی او انتشار دادند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامی به خامنه‌ای از وی خواسته شده که مانع اعدام 26 جوان اهل سنت کرد در زندان رجایی شهر کرج شود بخشی از این نامه روز گذشته در سایت مولوی عبدالحمید انتشار یافته در آن نوشته شده بود که او این درخواست را با انگیزه خیرخواهی برای نظام کشور می کند تا از اثرات منفی اعدام این جوانان در داخل و خارج جلوگیری شود و افسوده شده است که در این شرایط بحرانی جهانی دشمنان از این قمر سو استفاده خواهند کرد رونوشتی از این نامه برای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی فرستاده شده است میدیه رحیمی فعال سندیکایی و از کارکنان شرکت نفت روز پنجشنبه 28 شهریور ماه در تهران بازداشت شده است یک کمیته گزارشگران حقوق بشر آقای رحیمی هنگام ورود به پالایشگاه نفت تهران توسط یک خودروی ناشناس متوقف و بنا گفته افرادی که در محل بودند یکی از سرنشینان خودرو با لباس شخصی و مجهز به بیسیم به زور مهدی رعیمی را سوار خود را می کند و محل را ترک می کند مهدی رعیمی پیشتر هم در جریان مراسم روز جهانی کارگر احزار و تعدید به بازداشت شد عضو انجامان سنفی روز ایران میگوید این انجمن نزدیک به سه هفته است که در نامی به سه وزیر اطلاعات، کاهار و ارشاد خواستار لغو پلوم شده و این درخواست تا کنون بدون پاسخ مونده است. خانم مفیدی گفته است که به آقای علی ربیعی وزیر کار درخواست کتبی فرستادم و آقای شمسل واعزین جانشین رئیس حیات مدیره انجام نیز با واسطه از آقای علوی وزیر اطلاع درخواست ملاقات کرد نامه ای نیز به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستادیم تا بتوانیم دغدغه ها شرایط مشکلات فعلی روزنامهنگاران را با او مطرح و مطالبات روزنامهنگاران را از او درخواست کنیم. به گزارش جمهوریت، شنیده ها که از این است که در حالی که دکتر احمد نژاد اعلام کرد دولت دهم ده را بدون بدهی تحویل دولت آینده میدهام اما نزدیکان روحانی میگوین میزان بدهی سه وزارتخانه نیرو نفت و مسکن به پیمانکاران حدود 70 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 30 هزار میلیارد تومان متعلق به وزارت نیرو هست مردان تهرانی پنج برابر زنان در تصادفات کشته می شوند نام گزارش خبرگزاری مر دکتر علی رزا سریمانی افزود به طور میانگین در سال گذشته هر ما 82 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در تهران کشته می شوند که فروردین و آبان ما شاید کمترین و مرما شاید بیشترین تلفات بوده است. طالب نماد پور کشتیگیر وزن 84 کیلوگرم ایران روز گذشته در دومین روز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست پایتخت مجارستان به مدال طلا دست یافت. طالب نعمت با پیروزی بر سامان ترماسی کشتیگیر ایرانی تیم جمهوری آذربایجان به نخستین مدال طلای تیم ایران دست یافت. مهدی علی یاری، محمد نوربخش و رضا فقیری، سه کشتگیر دیگر ایرانی با شکست در برابر حریفان خود از دستیابی به مدال باز ماندن. و چند روز گذاشته هم کشتی آزاد ایران مقام اول رو در جهان به دست آورد آیا روز دی آن آشده دل بمیره راستنش و آشده پیش کشده دل های توجه شما را به مجله فرهنگ هنر این ساعت رادیو البرز جلب می‌کند امد رسولوف کارگردان ایرانی فیلم دست نوشته ها که به تازیگی مدال نقره جشواره ای را برای این فیلم دریافت کرده بود عصر پنجشنبه گذشته 28 شهری بر ما پس از ورود به فرودگاه امام خمینی تهران احزار و پاسپورت و لپتاپ او توقیف شد فیلم دست نوشته نمی سوزن درامیست در باره قتلای و کشتار نویسندگان و هنرمندان در ایران در طول یک دوران ده ساله یعنی از سال 1367 خورشیدی تا تا 1377 آقای رسولو پس از نمایش این فیلم در جشوارهی که تونس جایزه این جشواره را بگیره مورد تشویق تماشاگران و تقدیر برگزار کنندگان جشواره قرار گرفته است محمد رسولوف در سال 89 به تام اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی و فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری 20 سال محرومیت از فیلم سازی شد او پس از تقلیل حکم زندان به یک سال در ماه مه سال گذشته با فیلم دست نوشده ها نمی سوزن به فستیوال جشنواره کند رفت و جایزه بخش نوعی نگاه این جشنواره را از آن خود کرد جزیره آهنی کشتزارهای سپید و به امید دیدار از دیگر های آقای رسولوف است. او پیش از این جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول از یک یکمین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده بود. تندیس بهترین فیلم مستند از شیشمین. جشن خانه سینما برای گاگ، گاگومان و جایزه فدراسیون منتقد بین المللی جشنواره کن برای داستان نوشته نمیسوزن از دیگر جوایزی است که این فیلمساز ایرانی تا کنون برنده شده است. فرهاد تویدی رئیس هیئت مدیره خانه سینمای ایران می گوید در چند روز آینده آگاهی فراخان مجمع عمی خانه سینما منتشر میشه و مجمع عمی نیمه اوله مرما در محل خانه سینما برگزار خواهد شد به گفته آقای تویدی این تصمیم در جلسه نمایندگان 29 سنف خانه سینما روز سشنبه 26 شهری برما برگزار شد گرفته شده است در همین حال روحسای 6 سنف سنف سینمایی عضو خانه سینما در نامه به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی بر حضور خود بر مجمع عمومی فوق‌العاده خانه سینما تاکید کردند و سوء استفاده از نام اصناف ما و پنهان شدن در پشت این نام‌ها را خلاف موازین اخلاقی و حقوقی دانستند این در حالی است که حبیبالا کاس ساز رئیس هیات مدیره تشکلی که امسال به نام خانه سینمای ایرانیان تأسیس شد به عدم تعامل رئیس سازمان سینمایی با این تشکل اعتراض کرد. همونطور که در پیشتر در خبرها به آگاهی شما رسوندم مریم مقدم هنرپیشه ایرانی ساکن سوئد در پی توقیف پاسپورت از اسفند سال گذشته اجازه خروج از ایرانو نداره بنابرای گزارش گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم مقدم که پس از شرکت در فستیوال فیلم برلین به ایران سفر کرده بود، از اسفند سال گذشته به دلیل ضبط گذرنامه توسط پلیس ایران عملا ممنوع خروج شده است. دیگه رنفتن نگهی چرا اگه یه روز دلت تنگ شد واسم اگه دست داد نرسید به دستم نکنی شکایت از کسی خودت گفتی من به تو نمیرسم اگه یه روز دلت تنگ شد واسم اگه دستت نرسید به دستم نکنی شکایت از کسی خودت گفتی من به تو نمیرسم صفات یک کامو اگه دلت کسی هم نپازی نداشتی یادت بیاد رو کلب چه صد پا میزدی یادت بیاد رو کلب چه ساده پا میزدی اگه یه روز دل تنگ شد واسم اگه دستت نرسید به دستم نکنی شکایت از کسی خودت گفتی من به تو نمیرسم اگه یه روز دل تنگ شد واسم اگه دستت نرسید به دستم نکنی شکایت از کسی آه دیگه گفتی من به‌تن نمی‌رسم که بیشتر به آگاهی شما رسوندم جمعه آینده در دانشگاه آهووس دانشکده علوم سیاسی میزبان پروفسور میدی مزفری هست که بعد از سالیان درازی که در این دانشکده فعالیت داشت بزرگ داشتیم و همینطور خداافظی با پروفسور میدی مزفری خواهد داشت. پروفیسور میدی مزفری آخرین سخنان خودشو در این دانشکده با همکاران، دانشجویان و همینطور هموطنان ایرانی خواهد داشت و همینطور روح نمایی از کتاب جدیدش است. این برنامه روز جمعه آینده ساعت دو بعد از در دانشگاه آهوس دانشکده علوم سیاسی استسک و برگزار خواهد شد و همینطور شنبه آینده 23 سپتامبر ساعت 21:30 سالون گونگن واقع در مایل گده شماره 52 موسیقی پاپ و ترانه‌های قدیمی ایرانی توسط هنرمندان ایرانی از جمله آقای سعید والایی انجام میشه ورودی 60 کرون است قسمتی از موزیک آقای سعید والایی رو به نام تنگ قروبر رو برای شما پخش میکنم روز شنبه آینده 28 سپتامبر ساعت 21 و 30 دقیقه سالون گونگن واقع در مایلگده شماره 52 ورودی 60 گرون است می ترسم شب خوابم نگیره می تر... خوابم نگیره سیاهی شب چشماشو واکر ستاره من تو رو صدا کرد ستاره من تو رو صدا کرد باز مثل شب از دید پرهون یه مرد عاشق با چشم گریون آواز میخونه از پشت دیوار کی خواب امشم کی مونده بیدار <متصفح> چرا شب ما سهر نمیشه گله <متصفح> ستاره هر نمیشه شهر خرشی تو شار خوشی یه عصر نور راه منو تو امشب چه دوره راه منو تو امشب چه دوره راه منو تو امشب چه دوره راه منو تو امشب چه دوره اموتور که قبلا به آگاهی شما عزیزان رسوندم روز چهارشنبه دوم اکتبر سینما آسف و پرادیس فیلم مستندی را نشون میده که در مورد عنوان فیلم هست سپیده در مورد یک دختر خانم ایرانی است که به کارگردانی یک دانمارکی این فیلم مستند را تهیه کرده روز چهارشنبه دوم اکتبر ساعت 9 در سینمای عف و پرادس به نمایش در میآید. در کنار نمایش فیلم هم فالیت های فرهنی انجام میشه از جمله نمایشگاه و سخنرانی و همینطور رقص ایرانی و مسائل مختلف دیگر فرهنگی همکنون روی خط تلفن خانم ماریا آریانفر هستند که نقش فعالی را رو روز چهارشنبه دوم اکتبر در این مجموعه سینمای اوسفا پرادیس انجام خواهند داد و ای را هم دارند از جمله سخنرانی و رقص خانم مرجان به شما سلام و صبح بخیر میگن سلام می خدمت شما و همه عزیزانی که در شهر اهواز سدار من رو هم توی که خودتون فرمودید تا شنبه دیگه دومه اکتبر برنامه فرهنگی هست در سینمای رست فر at sinamoye خصوصی هست که فیلم‌های فرهنگی رو مخصوص معمولا پخش میکنه از فیلم‌های ایرانی قبلا چندین فیلم اونجا به نمایش گذاشته شده و این فیلم جدیدی هست از یک کارگردان به نام خانم برد مسن که در به ایران سفر کرده و این چ میگن داستان چ میگن فضا شناسی یا فضا نبری یا این علاقه مسل فضا رو که توی یک دختر ایرانی بسیار یعنیشون علاق من بوده تو دو این خانم رو تلب کرده و از روش شدزینه فیلم ساخته البته این کارکتر اصلی این فیلم، det er derfor, jeg har været i Iran, og jeg har været i Iran, har været i Iran, og jeg har været i Iran, og jeg har været i Iran, og og Iran, و اعتراض اینکه دست کم گرفتن خانم ها و علاقه اینها به مسائل بزرگتر ام با توجه به مشکلات برای این خانم برت مثلا خیلی جالب بود که چطور این علاقه همچنان استوار مونده در رهنه این دختر خانم و یا نسل زبان ایران که لحاظ خانهاتگی، لحاظ اجتماعی، دینی، سیاسی هیچ کدوم این چار عاملی که خدمت شما از کردم هیچ جای آزادی رو برای اینکه اینها پرورش بدن سدادشون رو وجود نداره و جای همه این مشکلات باز هم اینها اون علاقه رو پرورش میدن باز هم زمینه درشون هست اما امکانات متاسفانه وجود نداره و این بیشتر این مسائل هست که توجه این خانم دانمارکی رو جلب کرده و از روی زندگی و علاقه این خانم فیلم سپیده رو ساخت عنوان این فیلم سپیده هست، فیلم داکومنتری هست، یعنی فیلم سینمایی به اون معنی نیست فیلم از که نشون میده که باشه علاقه، مشقت و این پوسیسه at ایجاد علاقه تا این که به مقصد برسی رو این رو دنبال این فیلم 25 ی ساعت هفته بعد از ظهر به نمایش گذاشته میشه در سینمای اسفار و بعد از اون هم که مخاطب شما فرمودید یک jeg har هست که از من خواهش کردن که این کارو انجام بدم با کمال میل این سفارانی رو انجام میدم با امید به اینکه نماینده خوبی از طرف خانم های ایرانی باشم یچون تی میگن هاتهه ایرانی هر کجا که باشن چه در داخل ایران باشه چه در یک er بسیار بسیار بزرگی دارن که به جامعه اون و اون علاقه و انتظاراتی که در ایران هست و اونا نمیتونن اون رو عنوان بکنن این وظیفه من هست عنوان کنم زن مادر ایرانی که بتونم اون رو به جامعه دانمارکی حلون از وجهه بکنم نشون بدم این و با چایی ایرانی و با شیرینی ایرانی از عزیزان پذیرای خواهد شد این یک مختصر کوتاهی از برنامه که اون شب قرار انجام بشه خیلی استپاسگازارم از شما خانم مرجان ماریا آریانفر که رو در اختیار ما گذاشتید خیلی منون از شما که این وقت رو به من دادید و امیدوار هستم عزیزانی که صدای من رو می هر چقدر هم که علاقه ای به مسئله فرهنگی شاید نباشه شاید بیان خوب دیر وقت ساعت هفت غروب رفت آمد مشکل لازمه ترانسپورس منتها حضور شما بسیار لازم هست اون شب حمایت بکنید هم این کارگردان رو حمایت بکنید در اسرار علاقه نشون داده به کشور ما رفته و یک داختانی رو که من و شما نمیتونیم بازگو بکنیم ایشون اومده و داره توی جامعه دانمارک بازگو میکنه لازم به توضیحی که این فیلم در چهل سینماهای دیگه دانمارک همزمان همون شب روی پرده خواهد رفت یعنی که کل اکثر شهرهای بزرگ دانمارک این فیلم رو اون شب می‌بینن جا داره که ما به عنوان ایرانی لااقل حضور داشته باشیم اونجا و نشون بدیم که علاقمند هستیم ما هم به مسائلی علاقمند هستیم ما هم در این سختی ها شریک هستیم و من امیدوارم که خیلی از عزیزان و هم رو که در آووسن می‌بینن اون شب ببینم خیلی ممنونم از شما آقای شکلی بازت پاسه دوباره روز شما بخیر خدا نگه به افتخار غزل سادات رو استیج می دونم هرچی باشه تو آخرش مال منی بیمونی کنار ما ازم تو دل نمی کنی خیلی دوست دارم به بگی منو دوستم داری یکی از همین این روزا فیلم سپیده فیلم مستند سپیده دو هفته دیگر چهارشنبه دوم اکتبر در سینما اسفوا پردیس ساعت نوزده به نمایش در میاد سولماز علی خانی هنرمند جوانی که از هنر قلمزنی روی مس پاستاری میکنه در دورانی که برخی از هنرهای دستی ایران از بین رفتند و یا اندک هنرمندان بر مانده در حال فراموشی هستند خبری درباره دختر جوانی به نام سولماز علیخانی منتشر شد که از 15 سالگی یعنی هشت سال پیش به قلمزنی روی مس پرداخته و همکنون خنرچویان زیادی را آموزش می دهد. پایان بخش برنامه امروز گفتگوی خانم خانم سلما زعلیخانی با رادیو فرانسه است که تقدیم حضورتون خواهد شد. برای موشی هستم خبری به نام سلماز علی منتشر شد که از پانزده سالگی هشت سال پیش به قلمزنی روی مس پرداخته و همکنون هنر جویان زیادی را آموزش میدهد او که قلمزنی روی مس را رو نزد سه استاد این هنر را موقته ابتکار خود به ساخت زیورالات مسی روی آورده و از این رو با استقبال خوبی هم روبرو شده است اسلمان علیخانی پرسیدم چگونه به این هنر آن هم در 15 سالگی تمایل پیدا کرده و خواسته هنر استادان کوهن را پاسداری کند در نمایشگاهی که توی میدان ارگ کرمان برگزار شده بود هنرمنده خیزیدی شرکت کرده بودن من کارو یکی از استادکارای قلمزن کرمان رو که دیدم به نام استاد محمود اشرفی ناموقع وقت پونزه سالم بود خیلی از هنر و سنوی دستی سر برمان می آوردم معمولا تو این سن کسی دنبال این چیزا نمی ره فکر اینن که نمیدونم دکتر بشن مهندس بشن بیشتری همچین آرزوهای رو دارن بلی من وقتی کارای این استادکار رو دیدم خیلی برام دلنشین و جذاب بود و برام خیزار تو سوال بود که چطوری میتونن یه رو انقدر زیبا کارکن ازش تابلو سینی به هر به دیگه ای بسازدم مامانم قبلام بود و خانواده منم خانواده هنر هن. پدرم خیلی استخار میکنه به اینکه مثلا ب جاش سراغ هنر یا کارای دستی برم اونجا ما کارت این استاد کار رو گرفتیم و حدود یک هفته بعدش بدونین که اصلا خونهوادم به من چیزی بگن منو بردنده کارگاه این استاد و همونجا هم اسمو نوشتن و من از سر اون روز رفن Sær det من از همین سنه 15 سالگی تا حدود 18 سالگی به سمت جسته گریخته کلاس می‌رفتم، جاهای مختلف دوره می‌دیدم. ولی خب بعد از اون بود که حدود سن 18 سالگی بود که این هنر برام جدی شد. احساس می‌کردم که دلم می‌خواد حتا دانشگاه بذارم کنار و برم سراغ این کار. من بعد از اینکه دیپلم گرفتم، یه فاصله دانشگاه نرفتم. حدود 5 سال من دوباره برام میرم دانشگاه و ادامه تحصیل میدم. اون موقع کلا درسو گذاشتم که رو کسبیدم به کار قلمزنی و در این رو هم با دو تا استاد دیگه آشنا شدم استاد زویاورت و بعد به سرکاخان وحدتی که در خدمتشون بودم و چیزای زیادی ازشون یاد گرسم خانم علی خانی چه ابزاری برای کار قلمزنی روی مثل لازمه و این ابزار رو شما چگونه تهیه میکنید چون بدون شک اینها ها تولید و یا کارخانهی ندارم درسته ما هم این ابزار از اسفهان تحقیم می کردیم چون خب می دونیم که مخت قلمزنی در حال حاضر باید بگید اسفهانه چون ابزار وسایلیه که خودشون استفاده می ما هم همیشه به قیمت زیاد از اسفهان تحقیم می کردیم ولی خب الان یه مقدار امکانات که در اختیارمون گذاشتن الان حدود 80 درصد ابزار وسایل رو خودمون تحقیم میکنیم شاید بابرتون نشه ما حتی مسی که مصرف میکردیم، از در که شما میدونین تو دنیا مثل کرمان شهرت جهانی داره دین ها و مس از کرمان بیارین یا چگونه تهیه میکنید بله اوایل که ما هنوز آنچنان سرمایه‌ای نداشتیم مجبور بودیم این مسا به خورده خورده و با قیمت بیشتری که درامون میافتاد از اصفهان بیاریم ولی خب الان میتونیم با بازرگانای کرمانی که از مثلا به صورت تنی کناژ مس بیارن ما هم با اونها همکاری میکنیم و لکس می‌کنن برای به کیلو کلو 200 کلو میگیرن الان ما از خود باهنر هنر میاریم ولی باید با کد بازرگانی یک کس دیگه ای باشه چون به صورت کمتر از یک تون مثل نمیده با هنر. برای اونم نمیشه. ولی خب الان ما این شرایطو داریم که بخواییم مثل منو از خود با هنر که ما که برامون پایین تر ایناتش بیفته مراحل ساخت یک تابلو مسی خانوم علیخانی چندان نباید ساده و کوتاه باشه بدون شک صبر خاصی میخواد شما به این جوونیتون چگونه حوصله و صبر این کار پیدا کردید و چه مراحل رو برای ساخت یک تابلو مسی شما با دنبال کنید راست به نوع تابلو ما تابلوها رو سه دسته تقسیم می‌کنیم رو سازی برجسته مشبک سخت‌ترینش برجسته است حالا من براتون مرحله مشبک رو توضیح می‌دم چه فکر کنم بیشتر جالب برای ساختن تابلو مشبک اول باید پلیت مسیمون رو تمیز بکنیم بعد مرحله قالب سازی رو داریم بعد از اون فیرریزی بعد از خونک شدن فیر مرحله انتقال طرح رو داریم یعنی طرح رو بندازیم روی م بعد با اصلی ترین قلم رسم نیم بر شروع کنیم به نیم بر زدن در ادامه مرحله روسازی سازی رو داریم و بعد از جوش کار مشبک رو انجام میدید بعد از اینکه کلا کارمون روی مس تموم شد متر از روی قالب از برش میداریم تمیز بهش پرداخت میشه در نهایت هم کارای فیکسسای کردن مثل انجام میدیم و بعض هم آماده برای قاب کردن اما همهیه اینا که اق خدمتتون خلاصه گفتم همه اینا خیلی زمان می به چقدر این ساعتتی که من گفتم نیست به بسته به اندازه یه تابلو داره و فرهش چقدر ریز باشه کهقدر سخت باشه اینا همه دستگی داره تو قیمت تابلو داره و زمانی که سرس می‌شه. اینه چقدر همه... و چقدر حداقل و داکثر حد که به کاربرین مطمئن نه خب یک تابلوی به اندازه آسه بیشتر از یک هفت ده روز زمان می آیا این کار شما باعث شده خانم علی خانی که اطرافیان جوان شما هم به هنرهاییه کهن هنرهایی که هنرهای ایران علاقمند بشن؟ بله اتفاقا من تو دانشگاه خب یه وقت دوستان نمونه کارایی که حالا تو دستم هم تو گردنم میدازم می بله علاقمند میشن 90 درصد کارآوزایی که میان پیش من کار میکنم قشر دانشجو و جوان هستن سی سالن خیلی تاثیر داره خصوصا اینکه آدم خودش از در ساخته های خودش استفاده بکنهبل خیلی تاثیر داره خانم علی خانی وقت برای فروش آثارتون و چه تدبیری به کارمدی اونو میدین به یک فروشگاه برای فروش ما تو نمایشگاه های صنا دستی شرکت میکنیم تو مغازه هایی که حالا لست میکنن کارامونو می رو کارامونو می‌ذاریم. رو خودم قراره که یه فروشگاه اقصاص داددن به کارامپ برای فروش این کار خیلی از هاتون سپاسگزارم خانم سمرز علیفانی پیروز باشید. این گزارش به پایان برنامه امروز رادیوالبرز رسیدیم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بینیت سپاسگگذارم، تلفن ما ۲۷۵، آدرس الکترونیکی ما رادیوالبرزت هاmail.com است. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از صفحات فیسبوک رادیو البارز، دنسک، پرسیسک و از تارنماهای ایران اینفو داد دیکو و همچنین تارنمای ایران گولوبال داد اینفو میتونید پیگیری کنید امیدارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت هشت و سی دقیقه بام داد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود شما را به خدای خودتون میبرم شاد تندرست و پیروز باشید